جوزا سهر نهاد همایل برابرم یعنی قلام شاهم و سوگن میخورم ساغی بیا که از مدد بخت کارساز کامی که خواستم ز خدا شد میسرم جامی بده که باز به شادی روی شاه پیران سر هوای جوانیست در سرم راه هم مزن به وصف زلال خزر که من از جام شاه جرع کش حوز کوسرم شاه اگر به عرش رسانم سریر فضل مملوک این جنابم و این دارم من جرع نوش بزم تو بودم هزار سال کهی که آب خورد کند طب خوگرم بر باورد نمی کند از بنده این حدیث از گفته کمال دلیل بیاورم برم گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر آن مهر بر کف کنم دل کجا برم منصور بن مزفر غازی است هرز من و از این خجست نام بر ادا مزفرم برم اهده الست من همه با عشق شاه بود و از شاه راق عمر بدین عهد بگذرم گردون چو کرد نظم ثریا به نام شاه من نظم در چرا نکنم از کی کمترم شاهین صفت چو تو مچشیدم ز دست شاه کی باشد التفات به سعید کبوترم ای شاه شیرگیر چه کم گردد در شوَد در سایه تو ملک فراغت میسرم شعرم به یمن مدح تو صد ملک دل گشاد گویی که تیغ توست زبان سخنورم بر گلشنی اگر بگذشتم گذشتم چو باد صبح نی عشق سر بود و نه شوق سنوبرم بوی تو میشنیدم بر یاد روی تو دادن ساقیان ترب یک دو ساغرم مستی به آب یک دو انب وضعه بنده نیست من سال خرده پیر خرابات برورم با سیر اختر فلکم داوری بسیست انصاف شاه باد در این قصه یاورم شکر خدا که باز در این اوج بارگاه تاووس عرش میشنود سیت شهبرم نامم ز کارخانه اشاغ محب باد جز جز محبت تو بود شغل دیگرم شبل الاسد به صید دلم حمله کرد و من گر لاقرم و نه شکار قزنفرم ای عاشقان روی تو از ذره بیشتر من کی رسم به وصل تو که از ذره کمترم بن ما به من که منکر حسن رخ تو کیست تا دیدش به غزله که غیرت برآورم بر من فتاوت ساوییه خورشید سلطنت و کنون فراغت است خورشید خوابورم مقصود از این معامله بازارتیزی است نی جلوه می فروشم ونی عشوه میخرم.